آن سال و شکوفه ها از یخپندان خارج فصل سیاه شد و گلوگیا تراوت هر ساله را نداشت بهار دیر رس زود پا بود و لطافتش هنوز نیامده جای به گرمای طاقت فرسای تابستان داد دسته دست مردم از هوای خفی تهران به خونکای باغات ونک و زرگنده و دزاشوب و لار پناه می بردن. فقط آفتاب سوزان تابستان که بیگذر از باد بهاران از راه رسیده بود موجب حجوم ساکنین دارال به شمیرانات نبود بسیاری از آنها که هنوز دلبسته محمد علی میرزا بودند و هوا را پس میدیدند در جوار محل یعلاقی سفارت روس احساس امنیت بیشتری میکردند ملی زمان به یعلاق داماد و دخترش در حوالی قلحک رفته بود و تمام روز را با فخر زمان به گردش در کنار آفشار ملک و امامزاد قاسم و سر پل تجریش گذرانده بود و گردوی تازه و بلال شیر و گندم شاهدانه فراوانی هم فصل به فصل لنبانده بود ولی هنوز نه از خورد و خوراک سیر بود نه از سیر و سیاحت از روی پار سنگی که نشسته بود بلند شد و دامن چادرش را تکاند و به فخر زمان گفت میگن امروز فرنگی ها طرفای قلحک عصف دوانی سر راهمونه پاشو دروش کرد و هر داریم بریم تماشا فخر زمان که چشم به آمده شد مردم داشت از نسیم کوفزار و زمزمه جویباری که از نزدیکی میگذشت سرخوش بود گفت امروز دیگه گشت و گذار و سماد همین یه خود نفس تازه میکنیم و برمیگردیم منزل شازده چشم به ملی زمان دستها را به کمر گذاشت و مختصری خم و راست شد تا خستگی از تن بدر کند و به دخترش گفت. پس به شرطها و شروطها جمعه بریم امام چنار میکن کنار رودخونه جمعه ها قیامت فخری سر را به علامت موافقت و تصدیق جمباند و چشمها را یک لحظه بست به این امید که نوای باد و آب را بهتر بشنود ملی زمان موقع را برای حرف زدن با فخر زمان مناسب دید و لوتی را که چند چوبانداز بالاتر خرسی را میرخساند و کودکان بسیاری را به دور خود جمع کرده بود با سر نشان داده گفت خی باشه منم دست نعویم و بگیرم بیارم اینجا تماشا هیچ خبر مبری نیست فخری جان فخر زمان با لبخند گفت نه مادر هیچ من زمان دوباره نزدیک دخترش بر سر سنگ نشست و گفت مادر جان به فکر باش زوبتر دست بیکار شو شازده شالا صد و سال دیگه عمر کنی اما خب سنی داره ماشاءالله اگه زودتر نجمعی ممکنه دیگه بچه دار شدن سخت بشه مادر. فخر زمان این بار با خنده بلند گفت منو شازده کوتاهی نکردیم ولی خب مثل اینکه بچه سر اومدن نداره ولی زمان با احتیاط گفت ما تو خانواده زن عقیب نداریم مادرش خال منزد که ما شالله هزار ما شالله محسن خان تو دستمالش فیلم میکرد شکمش میامد بالا منم تو داداش تو یکی بعد اون یکی زاییدم بیشتر از اینو عجل اجل به مرحوم پدرت فرصت نداد نکنه شازده فخری حرف مادرش برید و گفت شازدم خودش به فکر مادر و برای معالجه میخواد بره فرنگ این سفر منم باش میرم ماینه برای منم لازمه روی هم هم فال و هم تماشا شازده نیاز داشت که در فرنگ به طبیب مراجعه کند ولی برای مداوای تبه لازم نه به منظور علاج اخیم بودن در دوران جوانی و به هنگام تحصیل در اروپ به این مرض مبتلا شده بود که چون از نوع حادش نبود و آفتاب ایران هم در تخفیفش کمک کرده بود تا به حال از آن جان بدرگرده بود وگرنه خنازیش معالجه نداشت و این مطلب را شاهزاده نیک می دانست. از عود بیماریش با فخری حرف زده بود ولی از لاعلاجی مرض صحبتی نکرده بود. پس که طب لازم بیش از که او را نگران سلامت خودش کرده باشد به فکر سرنوشت و آتیه فخر زمان انداخته بود. علاقه او به زنش در مرز شوهری پدری بود. مایل بود فخری پس از او قد قادر باشد زندگیش را بچرخاند نه اینکه به اندو ای برسد و در انتظار بنشیند تا مردی خواست شود و انعان اختیار او را به دست بگیرد. اگر به بهبود سریع اوضاع کشور میتوانست دل خوش کند دل با پسیش تسکین اما بروزات تجدد را در تغییرات مملکت نمیدید از آنجا که عمر خودش را کوتاه میدانست برای دیدن نتایج کار شتاب داشت این مطالب را به زبانی که فخر و زمان را مضطرب نکند به او گفته بود گفته بود سفری به فرنگستون برای هر دوی ما مفیده و پوسیده بود تو خیلی به داشتن بچه علاق من دیل؟ فخری سمیمانه جواب داده بود، بچه شاید چاشنی تازهی به زندگی بزنه اما زندگی من با تو شیرین شازده و نیازه به چاشنی دیگه ای نداره. شازده توضیح داده بود که قصدش از مسافرت به فرنگ این است که فخر زمان را به تعقیب رشدهی تفصیلی ترغیب کند، تو جوانی مستعدی و تا امکانات فوت نشده باید از عمر بهره بگیری بچه رو میتونی از شوهری که به دلخواه بعدها انتخاب میکنی پیدا کنی فخری اعتراض کرد بود من بیتو میخوام زندگی نباشه بچه و شوهر دیگه چه معنا داره از این حرفها با من نزن که آزرده میشم و اصولا این قسمت از صحبتهای شاهزاده را جدی نگرفته بود بخصوص که شاهزاده از آن به شوخی گذشته بود فخر زمان هیچ بخشی از این گفتگو را برای ملی زمان بازگو نکرد مادرش با همه خیراندیشی کجا میتوانست عوالم میان و شوهرش را درک کند و رفتار آزادمنشانه شاهزاده را دریابد ملی زمان با زوغ و شو به سلامتی مادر جان کی انشاءالله نکنه وقتی منظع عروسشو میاره اینجا نباشی فخر زمان پرسید عروسی پسرخاله قراره کی باشه ما در انتظار حاضر شدن تسکره ایم آماده شد را میافتیم افتیم تقویم گذاشتن برای جشن؟ ملی زمان گفت بله بعد از سال میرز محسن خان کارا در قزمیم براهده ملا ساله پدر آمرزید است که به گمانم برای چرپ کردن مشتلق یه چند سباهی آب شده بود رفتود زیر زمین هیچ خبری ازش نبود این ملا ساله هم تنبله هم تمام. اگر حریص نبود که خدا به دور کاهل پای مرود مگه همون به طمع مال و ولیمه یه تکونی با خودش بده خلاصه خواهرمو بی خبر گذاشته بود تا همین چند روز پیش که تلگرافش رسید الحمد گوش شیتون کرد دیگه حالا همه چی رو به راخه منتهى معتلیل پرسید پوشید معتلی دیگه برای چی خاله منزنگار خیلی بیتابه ولی زمان گفت منزبی طاقت بالا اما رسم و رسوم ولایتی که میدونی لابد سکینه خانم میخواد دخترشو با جهیز که سه‌لباسی روونه کنه یجور کارا طول داره مادر مردم مغیدن این وسطن که شنیدی زن نایب عبدالله سر زار افتفک و شد میشد اون خبرها رو زود به زود بره خالت بده هرچند زن عبدالله خان اومد و رفت کسی هم به چشم ندیدش میگه یه دختر رعیت بود نایب روش نمیشد میانی کسو کار درش بیاره بعد ناگهان چشم ملی زمان به جمعیت افتاد که دورتر از بساطه لوتی و خیرس گرد آمده بود و به فخر زمان گفت وا نگاه کن مادر این گرجو بازی در میارن من یه توکی پا میرم ببینم شه خبره و راه افتاد دو مرد که ایکی شلوار گلف پوشیده بود و ساعتی چون الانگوی زنان بر مچپست بود و دیگری فوکل و کراوات بر داشت و جلیخ و برتن در حال عبور بودند و وقتی دیدند که فخر زمان تنها نشسته است با ایما و اشاره به هم در سنگ دیگری در نزدیکی او نشستند و به قصد جلب توجه فخر زمان به صدای بلند از شب بزمی که در جلو داشتن شروع به صحبت کردند. یکی از اون دو گفت روسف تارزن رو خبر کردن. یک کمونچکش هم گویاه هست قلیخان آوازخون هم میاد. دیگری پرسید مگه قلیخان هنوز زنده است؟ زده اصلا خب زبارش در رفته بیچاره محصه قدمت و حرمتش خبرش میکنن نایده صدایی که دیگه براش نمونده یه در حراتی هم این دورو برا پیدا شده دیدنی با موی دراز و لباده بلند و کلاه نمده سفید رباب میزنه چه ربابی نقمه داودی بگردش دومی نگاهی به موچای پای فخر زمان که سوار بر و پوشیده در جورابی شیر و شکری و کفشی ای از لبه چادر بیرون بود انداخت و آهی کشید و گفت آه این همه دلبر چه فایده در جان بی مایه فتیر و هیدر شروع به زمزمه کرد بدین دو دیده حیران من هزار افسوس که با دعاین یعنی رویش عیان نمیبینم در همین موقع ملی زمان دوباره پیش دخترش برگشت و با اینکه از حرکات دست و سرش پیدا بود که قصد دارد آنچه را دیده است حکایت کند تا چشمش به مردها افتاد گفت پاشو بریم مادر پاشو شازده معتلی به مردان اضافه کرد حیا کنین رو بشناسین لوتی بازی حدی داره فخر زمان خنده کنان از جا بلند شد در این کار ساق و بالای سا را هم ایان کرد و گفت نه اشکالی نداره مادر آقایون از مهمانی امشب منزل ما حرف می زدن حتما تشریف بیارین چشم انتظارین هیدرخان که از جا جسته بود و کنار سنگی ایستاده بود وقتی مادر و دختر دور شدن گفت بر پدر این چادر و نقاب لعنت یه آدمو گمراه میکنی، فخر زمان زله شازده بود ولی زمان هم در راه پرسید از دوستان شازده بودند آش بد شد و لکروف تارشون کردن فخریز آدم دروشکی که برای همه روز کرایه کرده بودند در انتظارشان ایستاده بود خندید و وقتی سوار شدند از سورچی خواست که کروک را عقب بزند و دوری هم در قیتریه بچرخد و بعد به طرف قلحک سرازیر شود. سرچی همون که کروب را میخوابان گفت سربالایی قیتریه رو والا این حیونای لاجون نمی مری زمان گفت خب پدر آمورزیده خود و اولوفه به این بسته ها بیشتر بده سربالایی رن برن. هر سرازیری در قفای سربالا داره جانه؟ سر پل سفارت عثمانی جمعیتی ازدحام کرده بودند سوچی آهسته کرد. پرو به جمعیت گفت بابا بدین بریم مگه فیل هوا میکنن که وایسادیم چه خبره یکی از میان جمع گفت مگه سر میبری که عجله داری اسب خلجو گاریچی همین سر آسیاب زد به سرش گاری رو برداشت دو نفر زیر دست و پاش لیش شدن خلجم افتاده دک و دنده شکسته برداش تو قهوخونه واسادیم خبرش رو بگیری سوشکو ای خلج مادر برده ای بدبخت خلج راش مترنو دو دفعه در روز میرفت و میومد چطور قافل اسبش زد به سرش تماشا گفت خب زد دیگه، ولی زمان گفت برو برادر برو ما دیرمون شد، اما با احتیاط که و خانیمون نکنی. درشگچی را افتاد و فخر زمان از این ازدهام به یاد ازدهام روزی افتاد که عازم شمران شد. قبل از حرکت به سمت یلاغ به لالزار رفته بود که از کنتوار فرانسه مقداری خرید بکند. هنوز جنس مورد علاقه را نیافته بود که صدای ترق و شرق تیر و تپانچه بلند شد و هوی و های در خیابان بیجید. فخر زمان بی اختیار به طرف دهنه دکان رفت ولی پاده مغازه راهش را بست و گفت الا دولر تیر زدن تا خلوت نشده سلاح بیرون بری. معاذا وقتی فخر زمان بیرون رفت هنوز کالسکه الا دوله چند متری بالاتر از کنتوار فرانسه ایستاده بود و گروهی با صورتهای کنجکا و وحشتده به دور محل ترور جمع بودند و بلوزنه ماجرا را نگاه می‌کردند. شب داستان را برای شوهرش گفت شاهزاده از مشروط خواهان پروپا بود و با محسن خان که او هم از جوانی سرش بوی قرم سبزی می‌داد یار قار بود و تا وقتی محسن خان زنده بود آن دو با الیکبر خان شوهر منفر دوله و دیگر رقیقان هم افق مجلس و محفل مرتب داشتند و از اوضاع زمان سخن میگفتند گفتند. شهازاده میانه چندانی با دموقراتهای تندرو که بی مسئولیتشون می دانست نداشت و از بی اهمیتی و مالندوزی مصادر امر شاکی بود. بارها در این محافر شهازاده گفته بود این وزرای ما به سگ کهدانی میمونند خورده و خوابیده و تنبل شده. این دموکرات به سگ نازیابا که اهل را از نااهل و حوده را از بیهوده تمیز نمیدن فقط پارس میکنن برای آن هر سه بالا بردن سطح معرفت و گستردن به ساعت تجدد از ابزار لازم پا گرفتن مشروطه بود شاهزاده میگفت تا وقتی این همه از آهاد مردم بی خط و جاهلند از حقوق و آزادی چه میفهمن باید مدرسه ساخت باید عالم ساخت تا قدر مشروط دانسته بشه وگرنه همه زحمات آب در هاون کوبیدن و بیش از هر طبقه روحانیون رو مسئول بیعلمی علمی ملت دونست، گاه که شاهزاده در اظهار نومیدی از قوام گرفتن مشروط زیاده روی میکرد خان گفت زیادم نباید به خشخاش مشروطه ی آمده هنوز نوپاست اگر قرار بود همه اصلاحات اول میشد و بعد به دنبال مشروطه میرفتیم کار شدنی نبود وعده سر خرمن میشد و وقت گل نی مردم انقدر خبت و خطا میکنند تا یاد بگیرند نباید معیوس بود وقتی خبر کشته شدن محسنخان را آوردند، یه شاهزاده به قله رسید. از نظر او هم شکی نبود که سر محسنخان را زیر آغوب کردند و این قدر را از چشم بدخواهان مشروطه می دید، چانهایی که علنا به دامن استبداد رفته بودند، چه کسانی که در لباس مشروط خواهی بر اساس مشروط لطمه می زدند. شاهزاده اعتقاد داشت که فقط اشخاصی چون میرزا محسنخان میتوانند بذر علم و ادالت را در جامعه بکارند و نهالش را آبیاری و پاسداری کنند. آدم که به فکر منافع شخصی نیستند و منزلت دانش را میدانند و به ادالت در اجتماع پابندند. از نظر او نظیر محسن خان در نهزت مشروطی کم بود و دشمنان محسن خان زیاد. شاهزاده ارادتی به علا دوله نداشت و وقتی از فخر زمان، خبر ترور او را شنید فقط اخبار را در هم کشید گفت از این نوکارها چه فایده جز ناامنی و ناامنی زهر هلاحله برای مشروطه. وقتی درشکی از زرگنده و سفارت روس گذشت ششم ملی و زمان به دامادش افتاد که از کنار جاده همراه دو مرد دیگر صحبت کنان رد میشد و بهسورچی گفت نگهدار ببینم نگهدار و به شاهزاده روکرد گفت وا چرا شما مثل اسراهای شام پیاده میرین بفرمایید بالا بفرمایید